حکایت بخشایش الهی گمشده ای را در مناهی چراغ توفیق فراراه داشت تا به حلقه اهل تحقیق درآمد. به یمن قدم درویشان و صدق نفس ایشان زمایم اخلاقش به هماید مبدل گشت دست از هوا و هوس کرده و زبان تا در حق او همچنان دراز که بر قاعده اول است و زهد و طاعتش نام به عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای ولیک می نتوان از زبان مردم رست طاقت جور زبانها نیاورد و شکایت پیش پیر طریقت برد جوابش داد که شکر این نعمت چگونه گذاری که بهتر از آنی که پندارندد چند گویی که بدندیش و حسود، ای جویان منه مسکینند. گه به خون ریختنم برخیزند، گه به بدخواستنم بنشینند. نیک باشی و بدت گوید خلق به که بد باشی و نیکت بینند. لیکن مرا که حسن زن همگنان در حق من به کمال است و من در عین نقصان روا باشد اندیش بردن و تیمار خوردن. انی لمستطرون من عین جیرانی و لاهو یعلم و اسراری و اعلانی در بسته به روی خود ز مردم تا عیب نگسترند ما را. در بسته چه سود و عالم غیب دانای نهان و آشکارا